دیگر از شاخ سر صحیب بلبل صبور گلباننگ زد که چشم بد از روی گل به دور. ای گل به شکرران که توی پات شاه حز با بلبلان بلان بیدل شیدا مکن غرور از دست غیبت تو شکایت نمی کنم تا نیست غیبی نبود لذت حضور گردیگران به عیش و طرف خور و شاد ما را غم نگار و بد مایه سرور زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار ما را شراب خانه قصور است و یار حور می خور به بانگ چنگ و مخور و سور کسی گوید که باد مخور گوه و ولغفور حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی در هجر وصل باشد و در ظلمت است؟ نون